امشب در تقویم من شبی بیاد ماندن نیست یادم باشه تقویم جل را از کولم بردارم و جلوی بیست و هفتم دی ماه را ستاره بزنم از این ستاره های پنج پر. بچه که بودم خیلی طول کشید تا یاد گرفتم چطوری بیان که مداد را رو از روی کاغذ بردارم ستاره پنج پر بکشم. امروز یک روز ستاره دار است. دیدار با قهرمان. دیدار با نور ستاره ای که بر حسب معجزه می خواهد دوباره زنده شود. من از کول یک دوستجن روی کول دوستجن دیگری می پرم. هوا کاش کمی صافتر بود آن وقت ستاره های بیشتری توی آسمان پیدا میشد زمین یخ زده است از عرض خیابان که رد میشوم تا بیایم سمت شهر کتاب پام سر میخورد و نزدیک است با کله بخورم زمین دستها تعادل بدن را نگه میدارند تعادل خیلی مهم است مثل آب برای گیاه و مثل زخم برای دوستجن تیغتیغی و مثل قفل بیکلید برای زن خواب من من بلد نیستم گوش بدهم. گوش دادن خیالاتی میکند. حرفهای نجات توی کلاس یادم نمیآید. گوش دادن خوب نیست و برای سلامتی ضرر دارد. گوش دادن یک اعتیاد ترک است. امشب میخواهم با سامان یک بند حرف بزنم. قفل سکوت. دریاچه اسید. من میروم شهر کتاب. کتاب یار مهربان است. چند وقت است یک رمان را تا آخرش نخواندم. با سامان می‌خواهم همه رمان‌های نخوانده‌ام را تا آخرین جمله بخوانم. زمین یخ زده است. دست در جیب مانتو و عبور از خط عابر پیاده. خط سفید دلنگیز است و آدم را خیالاتی و حالی به خالی می‌کند. چی میشد بدون اول به چپ نگاه کن، بعدش به راست نگاه کن، اگر ماشین نیامد از خیابان گذر کن، تند میدویدم وسط خیابان. و یک ماشین شاسی بلند محکم میزد به من و ولو می روی همین خط سفید دلانگیز سامان سالها با این خط ممتد دوست بوده و زندگی میکرده. سامان با این خط نقطه ها بزرگ شده. مگر می شود یک دو چرخ سوار به ترک های آسفالت و تو خط کشی خیابان بیعتنا باشد. خطکشی خیابان برای دوچرخ سوارها مثل آب است برای گیاه و مثل زخم است برای دوستجن تیغ تیغی و مثل قفل بیکلی است برای زن خواب من من یک عروسک باتریدار هستم که دارد میرود شهر کتاب. عروسکی که اگر وسط سینهاش را فشار بدهی شروع می کند آواز خواندن. انگار جانوری مهربان، مثلا یک گربه سفید پشمالو چهار چنگولی پریده باشد روی قفسه سینش و عروسک جیغ جیغ کند. می خواهم جیغ جیغ کنم. سامان می خواهد امشب عروسک بازی کند. می خواهد دست و پاش را اره کند و یک علف بچه بشود و عروسک بازی کند. سامان از آن پسرها نیست که بچگیشان دوست داشتن پلیس بشوند و اصباب بازیشان توفنگ آب پاش و تاکیواکی بوده. شرط میبندم سامان پای ثابت خالبازی با دخترهای محد کودک میده. همهی حامد بهداد ها همینطوریند و الا حامد بهداد نمی‌شوند. حامد بهدادها عل جذابیت مردانهشان بالانس ذهنیشان زنانه است. نه یک زنانه آبکی و کشکی که مردها میگویند. یک زنانه امی. لنتی ها حس مادری را در دخترها برمیانگیزند و بعد یک راست می به نیمکوره احساسات مغز مهم این است که ما دخترها دوست داریم سالی یک مرتبه وارد بوتیک شویم. بوتیکی درجه یک که حامد بهداد داشته باشد و شاپوری که دنبال ناخونهاش روی زمین می گردد. شاپوری بوتیک هم اندازه حامد بهداد بوتیک کمیاب است. سامان شباهتی به پاساجدارها ندارد. شبیه آخشاپوری نیست. اصلا سامان حامد بهداد هم نیست. لانس آرمسترانگ است که با اراده و عشق می به جنگ سرطان برود و دوباره قهرمان دوچرخه سواری دنیا شود. لیوسترانگ دوچرخ سواری است که با پیام صلح و دوستی از همه کشورهای دنیا میگذرد و از همه شهرهای قشنگ دنیا عکس می گیرد. سرطان سامان زدن است. آرمسترانگ Livestrong. مگر شوخیست رتبه هفته هم کنکور باشی و رشته اولت را هم کارشناسی عکاسی آن هم دانشگاه هنر زده باشی. این همان عشق است. معلم پرورشی من توی راهنمایی میگفت می گفت یعنی علاقه شدید قلبی. من هم که دارم با کلمه ها بازی می کنم. سامان را رفت می دم به حامد بهداد و لانس آرمسترانگ. از کجا معلوم؟ شاید چند سال دیگر دختر و پسرهای دنیا خودشان را در سامان پیدا کنند سامان عکاس کله گندهای بشود و عکسش برود صفحه اول روزنامه ها و توی مصاحبهها ورد زبانش این باشد که عشق خانوم ایکس بود که من را به اینجا رساند. چه حس خوبی است خانم ایکس بودم؟ من خانوم ایکس هستم. جلوی در شهر کتاب ایستادم. از پشت ویترین کتاب ها را تماشا می کنم. ها جلد کتاب ها چقدر قشنگ شدند. جلد کتاب ها قشنگند یا امروز روز سرد قشنگ بی ربطی است. آقای فروشنده عین درویشها ریش و موی بلند دارد و با یک خانوم مسن گپ میزند. برای چی دارم می روم شهر کتاب؟ می خواهم سامان را قافلگیر کنم. درست مثل حامد. اما با چی؟ می روم توی شهر کتاب و منتظر می مانم و می گردانم و قفصه ها را با دقت دوره می کنم تا یک کتاب یا پازل یا چه میدانم یک کارت پستال موجودیتش را به من تحمیل کند. سبک کادو گرفتنم همیشه اینجوری بوده. تا لحظه آخر معلوم نبوده چی می بخرم. فکر نمی کردم و می رفتم توی مغازه و منتظر می ماندم چیزی چشمم را بگیرد. امروز یک روز ستره دار است. شانس با من یار است. با چشمانی باز و دستانی سرد وارد شهر گرم کتاب ها و به درویش یک لاغبایی بر می خورم که تازه به این شهر گرم آمده شاید از درویش بخواهم راهنماییم کند می توی شهر کتاب کفشان پاک گلی شدند روی پادری می تا گلهای کفشم را پاک کنم جلوم قبل از رسیدن به قفصها روی زمین چند جای پا دیده می شود به سیم آیپاد نگاه می کنم که از روسری و شالگردنم بیرون زده و روی سینهام افتاده. پادری زبر است و رویش نوشته ولکام. درویش هنوز دارد با آن پیرزن حرف می زند. پیرزن حتما عاشق رمان های عامه پسند است و لابد بعد از خواندن هر رمان میرود همین پارک نیاوران و مدتها با دوستان سالمندش درباره آن رمان وراجی می کند. با شخصیت‌هاش زندگی می و تهمانده آرزوهاش را در آنها پیدا می کند. من هم یک روز پیر می و لابد میآیم همین شهر کتاب و با فروشندهی که مثلا قرار است بیست سال بعد به دنیا بیاید درباره ی رومان مورد علاقه هم حرف میزنم. رمان چیزی چیزیست که همیشه می ماند. معلوم نیست فروشنده های شهر کتاب چهل سال بعد ریش داشته باشند یا چه میدانم لباس صورتی چاخانه تنشان باشد اما رمان همیشه می ماند و همیشه پیرزن‌هایی هستند که بخواهند تهمانده های آرزوهاشان را در شخصیت های رمان های آمه پسند پیدا کنند. پس زنده باد رمان عام پسند چون مقصد نهایی همه رمان ها همین پیرزن هستند. پیرزن هایی که روزی جوان و دلربا بودند یادم باشد این را به سامان بگویم. سامان باید بداند چرا عکاسی می کند. باید بداند تائی خط اکس ها هم مثل رمانها چشمایی هستند که به آنها ظلم میزنند های انتظاری جن به جانشان هم بکنی باز هم انتظاری این های من هستند که آنها را خارج از اختیار من واقعی میبینند و بی آنکه روح مجسم سازشان خبر داشته باشد برایشان چشم و گوش و ابرو میترشند به درویش سلام میکنم انگار سالیان سال است او را میشناسم درویش به اختزای شغل یا عادت حرفهی سمیمانه جواب سلامم را می شاید هم من را با کس دیگری اشتباه می گیرد. فروشنده شهر کتاب که میشوی خطای حافظه در ذهنت جا خوش می کند. من از آدم های توی خطای حافظه خوشم می آید. آدم هایی که خیال می کنند را جای دیگری دیدند. من نجات را با کی اشتباه گرفتم؟ سامان را با کی قرار است اشتباه بگیرم؟ در آمدن از خطای حافظه به این سادگی ها نیست روبروی قفسه ی های خارجی میستم رمان نه رمان به درد یک اکاس نمیخورد چشمهاش را از کار میاندازد و حافظه ی بلند مدتش را مختوش میکند ماک، پازل، جورچین، خودنویس منبلان اینجا واقعا شهر کتاب است یه سوپرمارکت چرا میخواهم برای سامان هدیه بخرم عذاب پشدان؟ جبران مافات آدم که نباید برای تک تک احساساتش دنبال اسم خاص بگردد والا احساساتش قهر میکنند بیخبر میروند و صاحب احساسات را تنها میگذارند ببخشید یک لحظه میایید راهنمایی میخواستم یک رمان خوب برای نوجوانان گروه سنی دال سری دبیرسانی ها لطفا چند لحظه صبر کنید الان خدمتتون میرسم درویش میخواهد پیرزن را هر جوری شده از سرش وا کند سرسری باهاش خداحافظی می‌کند و گپ ادبیشان را نیمه کاره میگذارد تا بیاید من را راهنمایی کند و برایم دنبال رمان نوجوانان بگردد. بهدهه همین است دیگر: من چقدر دوست دارم پیش بینی ناپذیر باشم من چقدر دوست دارم کاده‌هام را فلبدאה بخرم و موقع خرید انتخابشان کنم؟ رمان برای نوجوانان. نوجوانی و رمان. این کادو فلبداهی است که برای سامان می گیرم. برای احترام به نوجوانی از دست رفتم که در سکوت مطلق نسبت به قهرمانم گذشت. سرگذشتی که پایانش را قبل از آغاز به پایان برد و از همان اول شروع نشده تمام شد. امشب بر حسب تصادف قرار است دوباره از نو آغاز بشود ولی این بار در روشنایی و وضوح و نه در سکوت و تاریکی نوجوانی. درویش با چهار رمان کم حجم برمیگردد. نمیدانستم خارجی می‌خوانید یا ایرانی از هر کدام های این چند ماه را آوردم. میدنم که ایرانی و خارجی برایم مهم نیست. خود نوجوانی را عشق است. میگویم یک ایرانی و یک خارجی. جفتشم به انتخاب خودتن. نمیخواهم به اسم کتاب ها نگاه کنم. نمیخواهم در صفحه اول کتاب ها اسمم را همراه یک جمله قصار من درآوردی و تاریخ این روز ستارهدار بنویسم. همه چیز باید تا آخر سفید و مبهم باشد. سامان نباید کادوش را جلو من باز کند پاره کردن کاغذ کادو مسئله شخصی و خصوصی است هیجان و میلی خصوصی است لطفا اگر ممکن است کادوشان هم بکنید درویش متعجب نگاه هم می کند. یعنی تا بهال پیش نیومده کتابی را کادو کند که اینطوری نگاه هم می کند. بعد از رفتن پیرزن حتما اضافه چی آمده و با طی نخی رد گلی را پاک کرده هیچ اثری از ردباه ها روی کف سرامیکی شهر کتاب نیست. درویش به طرف دختری میرود که مجسمه های چوبی آفریقایی می فروشد و از او میخواهد رمانهام را کادو پیچ کند. زن آهسته و کوتاه از من می که از پایه گردان کاغذ کادوها یکیشان را انتخاب کنم. اینجور انتخاب ها برای مهندس ها خیلی سخت است. خاکستری مثل بتن. زنگاری مثل تیراهن. بس خربازی در نیاور دختر کاغذ کادوت را انتخاب کن. درویش و خانم فروشنده معطل تو هستند. کاغذ کادوی را برمیدارم دارم که به پارچه بیشتر شبیه تا کاغذ. کاغذ را می گذارم روی پیشخان جلوی خانم فروشنده. با درویش و خانم فروشنده خداحافظی می کنم و بسته ی را توی کوله میگذارم آیپادم را هم جمع می کنم و می چپانم توی کوله. می خواهم صدای شهر را قبل از دیدن سامان با وضوح بیشتری بشنوم. می خواهم با ریتم شهری با سامان حرف بزنم. دیما هست. روی روزنامه های دکه نیاوران نایلون کشیدند. مرد روزنامه فروش در یک پیت حلبی آتش روشن کرده و روی صندلی چوبی کنار دکه نشسته و دستهاش را گرم می کند. می سراغ مجله های زرد آمه بزند. می ببینم عکس حامد بهداد را روی جلد چند تایشان انداختند. نایدون خیس دیدن عکس روی مجله ها را سخت می کند. روم نمی شود تکه آجور را رو از روی نایلون بردارم تا واضح تر جلد مجله ها را ببینم. اتفاقاً بد هم نیست. می توانم حدس بزنم کدام یک از چهره های محف پشت نایلون حامد بهداد است. چه خوبی است که من خانم ایکس باشم؟ دوباره توی این مود رفتم که خیال کنم سامان عکاس بزرگی شده و من هم خانم ایکس زندگیش هستم. چهار تا حامد بهداد. چهار تا از اکس ها ممکن است حامد بهداد باشند. آماری مناسب برای آماده شدن برای دیدار بزرگ. ساعت دقیقاً هفت است. نمی دانم سامان رسیده است یا نه. موبایلم را در می آورم و به سامان اسمس می زنم Where are you؟ دلیور می شود و چند لحظه بعد جوابش می رسد. سر دزاشیب با ماشین جاهد دارم میآیم حامد بهداد امشب تأخیر دارد. حامد بهداد دارد با ماشین جاهد میآید پراید سبز شب یلدا یک شب کوتاه کوتاه یک شب قروقاتی مثل وقتهایی که به قول مامان شنبه یک شنبه لباس می پوشم. یکی کوتاه و یکی بلند. جاهد بخاری ماشین را روشن کرده بود. هر دو روسری ها از سرمان افتاده بود روی شانه ها من. و این خیال هم نبود داریم خیابان ولی را می رویم بالا. از سر توانیر که رد شدیم، لیلا گفت خانه من توی این خیابان است. بالابر برقی شیشه سمت من کار نمیکرد. به ساعت گوچک ماشین نگاه میکرد. به آن دو نقطه سبزرنگ بین دقیقه و ساعت. دو نقطه که هی خاموش و روشن می شدن. روی داشبورد پر از نوار بود ولی انگار هر دومان میخواستیم می‌خواستیم سکوت نشکند هنوز هم سر در نمیآورم که یک دفعه چی شد زد به سرم و شروع کردم به های های گریه کردن به میدان ونک نرسیده بودیم و من با چشم بسته گریه می‌کردم جاهد بغل خیابان پارک کرد و فلاشرش رو روشن کرد ندا چی شده نمیدانستم باید بزنه که دفعه اول بود میدیدمش چه بگویم. دیر تا می شود. راه بیافتیم. توی مسیر می گویم. جاهد فلشر را خاموش کرد و راهنمای چپش را زد و راه افتاد. با آنکه فرمان را صاف کرده بود، راهنما خاموش نشده بود. جاهد خودش راهنما را دستی خاموش کرد. به پارک پرنس نرسیده، هرچی از نجات توی دلم بود به لیلا جاهد گفته بودم. همه را یکجا بزنی به زنی قریبه و میان سال. داشتم گریه می کردم و توی بغل لیلا بودم. لیلا هیچ حرفی نمی زد. توی دلم خالی شده بود. می ترسیدم سوتی داده باشم. استراب داشتم. چقدر خری تو؟ این چه کاری بود؟ همشب خودت را خراب کردی، همشب لیلا را. از جعبه دستمال کاغذی کنار ساعت ماشین دو دستمال برداشتم و اشکام را پاک کردم. آرهشم به هم ریخته بود و هنوز دوست داشتم گریه کنم. به خودت مسلط باش. فقط خداحافظی کن. خرابکاری کرده ای. سرم را رو از روی شانه لیلا بلند کردم. ببخشید امشب اینجوری شد. دست خودم نبود. این بین خودمان دوتا میماند. میماند عزیزم. شما چقدر استاد نجات را میشناسید همانقدر که تو میشناسی عزیزم. حالا برو بخواب. استراحت کنی حالت بهتر میشود. کیفم را رو از روی صندلی عقب برداشتم و سرسری با جاهد خداحافظی کردم. آمدم یه مجتمع. چراغ نئون کافه دونات با آن فنجان بزرگ که بخار ازش بلند میشد چشمک میزد. میدانستم مامان و بابا خانه نیستند و دیرتر از من بر میگردند. لفتم توی اتاقم و پریدم روی تختم و دوباره زار زار شروع کردم گریه کردن. بالشم خیص خیز شده بود. خودم را میزدم. چرا گفتی؟ چرا گفتی؟ از پنجری اتاق به خیابان نگاه کردم. جاهد هنوز نرفته بود. نور کمرنگ قرمزی را می دیدم که توی ماشین هی بالا و پایین می رفت. جاهد داشت زیگار می کشید. پرده اتاق را کشیدم و رفتم آشپزخانه و از ظرف داروی روی یخچال دو تا قرص خواب برداشتم و قورد دادم. از شیر زرشوی یک لیوان آب پر کردم و یک نفس سر کشیدم. سرم درد میکرد و چشم ها می زود. باید میخوابیدم. خرابکاری یلدا. سامان توی این مهمانی چه میکرد؟ ته دلم خوشحال بودم اقل از سامان چیزی به جاهد نگفته بودم. بیان آنکه آرایشم را پاک کنم خوابم برد. حالا سامان با همان ماشین دارد می آید نیاوران و من دوباره با همان ماشین به خانه برمیگردم. روی همان صندلی می نشینم. شیشه ی بالا برش کار نمی کند. به دو نقطه بین ساعت و دقیقه زن می زنم. ولی این دفعه توی کولم هم آیپاد دارم هم کارکید. می توانیم با سامان توی ماشین موزیک گوش بدهیم. ولی چه موزیکی؟